بردیم به آنان که برای دفاع از ایران مردان جنگی بود سیزده و نو. نویسنده و کارگردان سامان سالو، بازیگران پرویز پرسوی از خودت بگو از وقتی برگشتی جمشید مشایخی ممانت بهت نگفته بود اولین بار که زبان باز کردی چی گفتی؟؟ فرحاد اصلا ایوان شگر وتییه که همزه داره با یه پنجاه هفت و پیزوری برای خرج دانشگاه وچش کسی میکنه. دا. دریا آشوری سر از بگم که عبر. ببین جواد نریم اونجا چرتوپت این دوست باباش اونجا از بارا نمیخواد اون بفهم ها رضا کنه نمیدونن چجوری از شمرون تو ته توبخونه رو بدون یه بلیت دی یه مترو میشه رفت و برگشت آهنگساز علی کوهندیری تهیه کننده جواد نوروز بگی. رنگ ایران و عراق فرمانده با کمی بلند روی زمین در کنار هم در وسط روی زمین نشسته و با شخص نامعلومی داره صحبت یا بیرونم و فراز یکی از رزمنده سیگار نکشه به مردونگیر قسم هیچی عوض نشده میگا این روز اول دوباره اومدیم قسمت بدیم به همین نمک که با هم خوریم. بیا بیرون بیا بیرون تا هممون بفهمیم که گذشتی از اذیت آزار این جوان آقا ببخشش این بنده خدا جوونه کم تجربه است تازه اومده نمیدونه که شما رادار گردانی نمیدونه که چند بار به جای محمد بنایی رزمنده عینکی مارو حالی کردی از تک و با تک اونور خاکریست ببخشش به جوانیش یکی از سربازا پلاکشو میبوزه همه سلاها و کلاها رو روی زمین گذاشته فرمانده به نقطه خیره شده به سوراخی بین گونیها و جعبه مهمات محمد بنایی هم از بالای عینک خیره نگاه میکنه و لبخند میزنه سرباز لاغرندام هم خوشحال شده از اون سوراخ ماری سر بیرون میاره رزمنده محسن لبخند میزنه. یکی دیگه. مار میخزه و آروم بیرون میاره قدر راست میکنه همه لبخند لب دارن و مار که به اونها نگاه میکنه و زبونشو بیرون میاره فرمانده توی سنگره که رزمندهی با عجله و دوان دوان پیشش میاد برای تخت کنار فرمانده میشینه ممدانایی میگه زیادم گفتم یادت باشه اینجا کسی به کسی بروان نمیگم سرور رئیس آقا حاجی اخوی برادر همسنگر آسه جلال هرچی فراز و صبح بیقراره صادق صفایی میگه تمام 20 از کار انداختن کور کردن صد دوگم کلاه آبرو خونه اومده بالا جلال سلاهش رو برمیداره مسلح میکنه میدوه بیرون جفرم پشت سرش. سید جلال نگاهی به اطراف میکنم سیه جلال دوان دوان از روی پلی که با گونی درست شده خودش خودشو به سنگر پیش رزمنده رو میرسید. همه جا رو زیر نظر دارم رزمنده ها آماده هر گونه هم بگن رو کنی ببینید چی نیجم تا من نگفتم که تیکاری کاری نمی‌کنه. اینجا هر کی بخواد می کنی قرارم با قبل از میراج و موشک و موز انفجار با تیر خودم میفرستمشون دنیا و همینجا شرطا بین خاک میرزم روش تا قبل از شرمت شهادت عطسش بزنن پای اشتباه دیشت نمیستن جوان ناکام مفهومه فراز همون مار کبرا یه ها تکون میخوره همه در سکوت سلاحاشون نشون رفتن سی جلال میدوه و خودشو به طرف دیگه میرسونه همه آماندن سی جلال پشت خاکریزی قرار میگی. همه جا رو نگاه میکنه محمد بنایی با دوربین شکاری نگاه میکنه همه نگرانه حتی فرمانده سلاحا آماده شنگی که یه اراقی از پشت درخت دیده میشه بیرون میار جفر سیگارشو خاموش میکنه محمد بنایی اونو دیده و رزمنده محسن اراقی رو میزنه گلنگدن رو میکشه پوکه بیرون میپره به سنگی در خاکریز برخورد میکنه و یواش یواش روی زنی میگید سیه جلال از خاکریز سر بلند میکنه به سمت اراقیان نشونه میره و شبک بقیه هم تیراندازی به سمت اراقیان رو شروع میکنه اراقیان میزند انفجاری بین نخت های سخته تیراندازی دو طرف جعفر با یکی از رزمنده ها جاشو عوض میکنه تا از اراقیان منفجر میشه چند خمپاره و تیر نزدیک سنگر ایرانیا فرود فرو بیاد در یه سنگر ایرانی و شهاده از خمپارهای در آب رگبار مسلسل به طرف ایرانی حمله ایرانی تیراندازی نیروهای ایرانی ادامه بیاد سید جلال و جعفر لحظه نیستن که انفجار بمب نزدیک سنگرشون اونا را نیشونه سرگاشون گرد و غبار زیادی اونجا پیچید چشم چشمونه میبین محمد بنایی سعی میکنه با دوربین ببینی. اما نمیشه دیدبان ایرانی تیر میخواه داره از برجک میفته که یه تیر دیگر میخوره از بالای برجک به درون آب. مفت جلال به طرفش میده رزمنده حواسشون به سیه جلال هست سیه جلال عقب اقب حرکت میکنه و تیراندازی میکنه لحظه پاش توی آب میهه خودش رو کنترل میکنه خمپاره توی آب سی جلال لحظه میشینه به سختی بلند میشه چشم به آسمون می‌ندازه و خمپاره رو در آسمون در حرکت میبینه که درون آب همون نزدیکی فرود میهن قبل از خرود سی جلال روی زمین دراز میکشه بعد از افجور بلند میشه سلاحش رو مسلح میکنه و به سمت اراقیه شلیک میکنه به طرف برژک خالی میکنه یکی دیگه سرباز و توی پاک نفتی جلال به برجک رسیده از بونیها ها بالا میره و وارد برجک میشه حالا از دیده بهتری به نیروهای پیاده ایرانی و تانک که در حرکت شلیک میکنه مصمم اونها رو به رگ هست نستی فشنگ مستقصر تمام بشه کلاشینکوف شهید و دیده و از توی برجک بر داره و به شلیکش ادامه دید تانکا و نیروهای اراقی نزدیک سنگر ایرانی شدند. یکی از سربازان ایرانی تیر میخوره و روی بنایه سنگر میفته سرباز لاغرندام هم تیر میخوره شهید میشه سید جلال گلنگدن سلاحشو میکشه پوکه بیرون میفته آماده شلیکه چند تیر به سمت اراقی ها میدزه. دو سرباز ایرانی با هم تیر میخورن و از سنگر بیرون پرت میشه سید جلال تیر اندازی میکن. بگو به کمر جعفر اسابت جعفر جعفرم توی سنگر روی زنه افتاد سه جنور که اون صحنه رو دیده ناراحت و نگران نگاه میکنه به ستون برجک تکیه میده شلیک از جانب عراقی محمد بنایی و رزمنده محسن هم میافتند آرپی جی زن ایرانی آماده شلیک میشه اما پیچ از شلیک خودش مورد اصابت خود دشمن قرار میگیری می فهمید سه جلال حسابی ناراحت می گردد. در پی هدفی به اطراف نگاه می ناگهان از برجک بیرون میاد و از بونیها ها پایین در نزدیکی خودش که عراقی رو توی آب میبینه که با گونی روی اون سنگر دروسته. تا میاد به خودش به جنب برجک با آرپیجی پی جی می‌زنه. برجک منفجر میشه. با صدای جنال و حسن فشار هم بچاریم. به زمین روی همون پل معلقی که با مون ساخت. همه از ما نگران به طرف سی جلان و دو. جلیان ملایم ها دست سی جلان آمبولانسی که در حرکت بود و از خیابانه مختلف شهر عبور کرده بود به اورژانس بیمارستان بیرسه سال 1389 تهران سی جنار بیهوش وارد دستگاه سیتی از میشه کلاه آبی برسرداره و لباس آبی بیمارستان پوشیده دکتر، با دفتر سی جنار در راقم سویده ببین بارن جان سه جلال دیروز یا سردان گرومند این روز از لحاظ بالینی شرایط کمار تو چند ساله دو مباده هر کیس دیگه ای بود از لحاظه جسپانی تا حال تحلیل رفته بود ولی سه جلال با فیزیتراپی تهمیناتی که شما بهشتگید از اولا چه حفظ کردی؟ در منداری کنم اندازه خودم بزرگ شدم که بفهمم وجرات شیدنشو داشته باشم. از وقتی گفتم بابا همیشه هم همینجوری جسمو بی نشون نشونم دادن که خوابیده بود و به زور سیناموس و رنگ و ماسک اکسیژن سینش بالا پای میشد. حالا شما هر چی که از باید به من بگید. واقعیت چیه دکتر؟ از پشت شیشه سه جللو می دیدیم که بیهوش می نتیجه آخری آزمایشم میگه که بدن توان خودش از دست داده. دخترسه جلال جا خورده کلامی نمیتونه بگه ولی یعنی بابا هیچوقت نمیفهمه که یه دختر داشته که هر روزون که عشق ایمه فردانه سنده که یه باران از دهن باباش بشنه گفتی بزرگ شدی نه؟ پس بس بذار باستی یه بارم که شده با خودت بگم از لحظه پزشکی از همون اولام خیلی امیدی نبود اگه پیگیری مادر و اسراق پروفیسور نبود شاید خیلی زودتر از اینا با تسکار ازش جدا میکرده پروفیسور اکسه نغز جنور را دید. اما از شون منبع نور و با باران دو بروش میشسته این جور مواقع پزشکی نمی پزشکی نمیتونه پیشمینی دقیقی از وضعیت بیمار داشته باشه اینجا میگه به سر خودش پریود مریضی اونقدر طولانی شده که نمیشه چیزی رو حد زد حتی با آزماش هایی که دکتر ازشون حفظت میشه گفت شرایط پیچیده ترم شده اما این قلب آدم اینجا میگه اونی که خواستش نیم بوده که پدرت تو این همه سال بمونه اگر بازم بخواد میمونه بارا یعنی دستگاه رو ازش جدا رو <تصحیح> اولین بار میدونی کجا راه افتدی دستت اینقدر بود گرفتی به دیوار راه روی همینجا دو قدم تاتی تاتی و افتادی تو بغل خودم مامانت بهت نگفته بود اولین بار که زبان باز کردی چی گفتی با اون چشای کچولود زلگ زده بودی به بابات بهت گفتم میدونی کیه؟ چیه مامان گفت باباست به دکتر بگو که بدونه میتونی بگی بابا بابا کوری زور زدی و هم گفتی آبا آبا <تصفح> نذارین دسکار چطور کنم بارفزو حالا فقط من همین آباده دارم ایمی ندارم همین جوری باش. ولی نگشت دارین تا سایش مال سرم باشی شما رو به همون خدای کسش حرف میزنی یه حسی من هم میگه بابا میگرده. <تصحیح> <تصحیح> دکتر تحت تحصیل عشقای باران کرد ما روز سر دفعه خدا جلال تختی خالی توی اتاق پذیرایی کپسول اکسیژن سرم پایه سرم و دیگر وسایل مراقبت از مریض هم کنار تخته با یه پرده توری اتاقی برای سی جلال درست شده بوده عکس مادر مرحوم باران هم به دیواره عجیب شبیه خودشه صبری از همرزمای قدیم سید جلال حالا با مو و محاسم سفید پیش باران به موقع اومده با موجود باره همیشه خبر جدید صبح دکتر فهدایی گفت اجازه بدیم تسکار ازش جدا کن. گفت نذاریم بابا بیشتر از از زرش بگیم نمیتونه حرف شایدان بده به حرف راحت هم و همه این سالها هیچ وقت بابا جلال نفهم اصلا بارانی وجود من ماما نزاش آغازات کن بخوره روزای روحاتی باید بودم زمارم. مگه به همین سادگیه اونان بعد این همه نتیجه هفته با برفت و پرنیان هر زدم خب گفت جفا بازنمایشان پیچیده تر شده خب این یعنی بهتر یا بدتر خدا را چند روز عمر دیگه میگه به طولانی بودن کم نمی گفت حتما بهتر یا شاید هم راهبندی بالا میره و وانت زر رنگی که روی اون نوشته لولکشی و تأسیسات منزل و تعمیرات و سرویس انواع لوازم برق منزل پذیرفته می شود از زیر اون عبور میکنه بار وانت کولر کهنه و وسایل دیگه است دو تا پسر جوان توی وانتن راننده پسر جوونی با این شیار عصی تو گیاه فه، فکر میکنی یه یارو پخشش به نه بود شاید نکنن همون اول یه اولی یه لقد اولی ماته دیجنه ولی من کار داشتم خلاص. و چون آخمه تو. من باورنده و خطر خودش میخوام. آبادت میخواد یه آدمی بگه که سرپاود همرو زود ازدواج داد. دا تیر بزننه زمانه. تو میفهمی؟ شماره راهنمای جری گفته ما. نه فهمیدم چی شد؟ میگم شماره ایرانم زیما. فرآنمای جری گفته. یک الو ورنگ جان جان بیمارستان بره چی باش خدا پس. خدا چی شوند بیمارستان ببین جواد نریم چه چرت این دوست باباش اونجاست پارا نمیخوادون بفهم ما چی کاره. پروفسور در حالی که برگی آزمایش سید جلال رو میبینه با دکترش صحبت میکنه آقای پی این کیس همه چی عجیبه دکتر اینا نشون میدهد دیروستالا وضعیت سه بار عوض شده همه موردم عرامت خوبی نیست؟ شاید ولی یادتون باشه ما با یه مورد استثنائی از کما ترفیم درسته ولی بپذیریم که بعد از گذشته این همه زمان و نتیجه آزمایش جدید باید خونوادش آمماده کنیم خانواده سرب منم یه باران داشت عین همین دختر وقتی تو فرودگاه فرانکفورت بهم گفتم بعد تصادف فته تو کما دنیا رو سرم خراب شد. همسرش آلمانی بود. بعد از مراسم تطمین فرشته کوچولو ما رو با خودش برد و نذاشیش و خونه ببینیم. تو اون سالها وقتی این دختر و مادر رو دیدم و فهمیدم کسی رو ندارم احساس کردم خدا یه نوه دیگه ببندده حالا منتظرم شاید یه موجزه یه لط، یه نگاه دکتر برگی آزمایش رو برمیده ولی نتیجه آزمایش چیز دیگه رو نشون میده با عرض پوزش و احترام فکر نمی کنین خیلی احساساتی در این تصمیم می و با تمام امکاناتی که برای یه بیمار اورژانسی فورس ماژور هست و در اختیاری کسی می که سال هاست مرده اتاق سی جلال دستگاه تلاوام کار قلب رو نشون می ده سلوم قطر قطر می چکنی پرستاری بالی برای اینکه که مانی سلوم به کنه با سوزن سوراخی در محفظه سوم ایجاد میکنه و نه سیه جلال اما انگار لباش تکون میخوره چشمش هم تکون میخوره دستش دستش هم حرکت مختصری میکنه چشم های سیه جلال بعد از 20 سال داره باز میشه اولین چیزی که به یاد میاره شهادت همرز میشه چشمی گردونه و قطر اشکی از چشمش جاری میشه چقدر بیر شده بسیاری از مواشم رفته و باقی سفید شده سعی می‌کنه بلندشه بلند شه، اما نمیتونه سرشو از تخت رو داره. تیر خوردن تیر به کمر جفر یادش میاد به لرزه میفته شهادت دیگر همرزمش یادش میاد و افتادن خودش و به یاد میاره که صبری و رزمندی دیگه ای بالای سرش بوده نا به اطراف چشم میگردونه و دوباره روی تخت میفته دکتر با سبری صحبت میکنه سبری عصبی قدم میزنه اون یه پاش میلنگه دکتر میشینه سبری هم باران هم اونجا نشسته. اتفاقی که برای آقا بود من در نوع خودش منحصر به فرده یعنی بیماری که شرایط کمار بالای ده سال دبون بوردن به تعداد یه دستم نمیشن از این که روکه پزشکی ویتین بودن برای اوکی کنسل تسگاه ها به شرطم این کس یک شوق بارد شده که نتائجه آزمایش هم جواب برش پیدا نمیکنه. نتیجه این حرفای اینه چی دکتر؟ پروفسور هم اونجاست مقاومت بدن بابام دوباره سیاد شده پروفیسور یعنی چی؟ یعنی گلال بازم میتونه تعمل کنه؟ خوشبختم که اعلان کنم این یه سپرایزه هم برای شما هم برای ما و هم برای علم پزشکیه بیمار یک ساعته که ریکاوری شده نشد عرض من اینه که خلاصه همه این حرفا و جون کلام چی میشه دکتر اسمش موجزه از چیز دیگه نمیدونم ولی ست جلال برگشته باران عشق میریزه یعنی بابا جلال من از کما در اومده چشماش باز کرد حرف خدایا خدایا شکرت خدا خدایا شکرت خور خواب نیستم مفزم. درست دیگه من خواب نیستم یعنی واقعا بابا یک محالش خوبه عوازش سر جاشه تو خدا من میخوام ببینمش امتباستو میکنم دکتان رو من بخواب ببینم من بخواب <تصفيق> جواد راننده وانت و بهرام پسر جوان همراش پشت در اتاق نشستن که گریه های باران به در اتاق نزدیک میشن پسر جوانی سبد گل در دست به اونها نزدیک میشه. <تصفيق> اینو کم داشتم تو ویلا وی. میان خوب آغازیده با کمپوت تشریف نمیبرن بابا. تماما که سو چیزی بی می بینید بیچاره. تماما که که قامتونه. سلام من شد حاج صبری. انشالله شما قم نبینی. میگم اگه اجازه بدین واسه مراسم تطهین و شب سوم و هفتم و چهلوم با اجازه پدرم هر نشو تالاری که شما صلاح ببینین رزرو میکنم بهترین مسجد تهران آجا، بهترین پذیرایی، بهترین تالار پروفسور پشت یه میز با باران و سبری و دکتر فدایی صحبت میکنه کوچکتانی شد که از فهمش در مورد شرایط و تایم سالهای طولانی کما میتونه به فاجعه غیر قابل برگشت تبدیل بشه چقدر وقت داریم پروفسور؟ با توجه به شرایط نظر مستقل پروفیسور اینه که با کاهش دوز داروای آرام بخش تا چند روز آینده با بشوری کامل برسه یعنی سبری و باران شوکه شده اون وقت بابا باید چشم باز کنه تو سالها پیش بله. سید باید فکر کنه تو همون شرایط زخمیه به باید کم کم باید متوجه عوض شدن شرارت بشین و شکی نباید بشواره چید و خصوص وقتی بفهمه همسرش از دست داده و دختری به سه سال باران داده اگر نه. برگشت از حالت بیهوشی بسیار خطرناکه و جرانا پذیره بهرام و جواد در راه رو به انتظار نشسته. سبری از اتاق بیره بهرام و جواد بلند میشن و پیش سبری میره خودی سلام سلام سلام برشان خوبه چه حجی کلامو اومدین که در خدمت باشین دیگه. کاری از دستمون بر شما کارتون چیه؟ ما مهندسی. مهندسی چی؟ مخابرات. مهندس مخابرات. گرایشتون چیه؟ گرایشم حجی جوی با عزت ماورا امواجشه. باران خیلی از شما تعریف میکنه همینطور مادر خدا بیامرزشه. خدا آقا بهرام جواد هستن بهرام جواد الان وضعیتشون چطوره؟ پزشک که معالجشون میگه برای اینکه که شب پیش وارد نشه باید زمان برگدونی مقب یه ایچی حرف زادن در این مورد سخته چه برسته به اجاش اینو دیگه باید سپور به این امیر شما گفتین ما گوش کردیم حالت خوب بیدونم درسته شما خیلی هم به ما اعتماد ندارید اما آدمی که بتونه شریط رو برگردونه به عقب و زمان رو شریط هم کنترل کنه هست فقط شما باید تاییدش باید کی؟ شادی شادی که؟ شهرام شادی کارگردانه کارگردانه خوبی هم هست الان یه مدتی بیکاره بیشه باید صحبت کرد مجیخ خیلی توپه چهرام شادی توی خونه داره فیلم میبینه با شنیدن صدای زنگ خونه فیلم رو نگه میداره و از پلاه های پایین میاد خونه شیک و گرم قیمتی داره از رابردنی رو به دیوار کیه؟ سلام آقا سلام برزگر هستم بهنام هفته پیش اومدی مده یبنی آها این دیشه ماه بایی گذاشتیم کانروش پس و پیشه ها فازله پرشم با واقعا پدر آدمو در میاره. 5 الان همه تو کفن. خیالت راحت. من, من رو درستش میام. الان در این مسالهی صادقی اتاق سی جدید در بیاد. صبی و دکتر گان پوشیدن توی اتاق. پروفسور چراغ قوی رو روشن می و چشمای سید رو میخنه. چشم ما هیچ تکی نمی کی میشه انتقالش ده پروفسور؟ مشونه همینجا میمونه با هر سال این پروفسور من یه جمعیتی رو بسیج کردم که یه جایی رو مثل بیمارستان سرای زمان جنگ درست کنن یه کارگردان سینمام گذاشتم بالاسترشون که به کارشون نظارت کنه که وقتی سید چشیشو باز کرد متوجه تغییر عوض نشه با شما میگینم چه میمونه بازم تکرار میکنم بیمار تو شرایط ویژه مخفیه حتی معلوم نیست بعد از بهوش آمدن کامل علائم حیاتی اولیه‌اش چطور باشه. ما شما رو بیمارستان صحرایی درست گرهی آرتیس آوردی. بخوای دوباره جنگ را بلمسی این بنده خدا رو ببری وسط نمایشه بعد که آنتم هر منه که گفته بودم نباید دیگه متوجه شرایط تو تغییرات بشه. اومدیم و شما اینجا نگهش داشتید متوجه تغییر اوضاع شد بعد دوباره به شوق وارد شد اون وقت چی؟ این همه دکتر و پرستادی اینوی دادن تردد میکنن ما یکی اشتباهی صحوان یه حرفی زد یه کاری کرد باعث شد سه یه گذر این همه سال رو متوجه بشه اصلا بقیمه همه سرشون کرده همیشه همه جوری بودی اهل افراد و تفرید همینی که بعد جوالت نمی یا رون نمیشه شه به این بند خدا که ما دهتای ای ساکت بوده بگیم چی شده و چه شکلی شدیم عجب باز حرف کاسکوزه شد و کوتایی دیوارو ما موزده همیشه شدیم سیبل مقابل روز رو پرنیان این همه مدت اگر مقصر ما بودیم همه توی این کارشون درست بوده از روح هر حال من با عنوان پزشک که مارج و متخصصش اجازه نمیدم سید از این اوتا به جایی که منتقلش شما مگه رفیقشی هم رو و هم رکابشی و میخوای آسین بالا بزنی یا کاری براش انجام بدی همینجا با همین آدمان ممکنه و جواب میده آقای سبری باران کوله به پشت از کنار ماشین مدل بالای رد میشه. خانم باران باران میذاره. خانم ورمن؟ آه خانم ورمن. خانم, خانم ورمن. سلام. عليكم. سلام سلام. م خواهر خودم آرزم که عرض داشتم اگه اجه بدین. اگه اساعت بر عکس دکمه یقه ای بالا باز می کردیم من خانوادهگی خوب میجی میفهمیدی که این جانت هیچ کوونه نسبت با جنووادی ندارم این داستان خواهد خیلی وقت از ما دخه به بنگشت میخواستم اگه اجازه بدین هربخت شما پیشنهاد کنیم بنده به اتفاق حاجوا پیدام بیام خد نتون بر مرره خیر. یه مزاکره گفتم که اگه یه سر خون میرسید به مغزتون و شرعه درک میکردیم احتمالا هم خودتون همون حاجاغاتون میفهم میدین که الان با این وضعیت اصلا موقعی بسته پیشنهادی و عمر خیلوی مزخرفات نیست به ایچه عنوان اله. بحران و باران توی یه کافی بخصده باران آپورتهانو کیک چه میشونه میگم اگه آقا خوشش از من خوشش نید چی, چی من درست دانشگاه رو بایل کردی کار بار درست اصابیم که ندرد اگه بگی خجالت نمیکشی دل به دختر یکی دونه اگه اگر بگی همین امیر وصلی تنها من دخترم نیچی دیوونه این؟ نه روزی ست دفعه سوال خودم همین میکنم ولی آخرش میرسم به یه جا که چی که ندید بهر بابت افتاد بدارم که واسه خیلی دیگه فقط فقط خوب شدن است جلال هستی هر شیوه بگه جو، هر جوری هم برکرد کنه دستاشو به علامات تسلیم بالا میبره و باران نگاش بگه کارگرهای سحنه مشغول آماده سازی اتاق برای سه جلال هستن شهرام شادی در کنار تررای صحنه به اونا سرکشی میکنه فخار آینه روی دیوارو برمیده پرستارا او رو سه رو به اتاق جدیدش میارن و دستگاه ها رو بهش وصل میکن ظاهره ظاهر اتاق قدیمی و کمی خراب همهی تکنچالره اون اونم دادن این طرف زدن امیر همون پسر پول دار توی کارخنه مواد غذایی پدرش با اون صحبت میکنه هر دو لباس سفید پوشیدن و قدم می در کنار تصم نقاله بسته ها چیه شده بسر فکری عجیب دارم هیچ علاقی به من نداره هر چه که من خودم بهش نزدگی میکنم اون پس میتشه اصلا دلش به من نیست غلط نکنم همش دیر سر این پسر کاسه باشقابیست من هر کاری لازم باشه می کنم تا درست باشه اما از تویی که باید ثابت کنی که مردش هستی و دختر سردار برو من میتونه بهت بکی کنه من هر کاری که شما صلاح بدهی نمید پدر مید اون هم از همرز مای سابق جلاله بهرام و باران از پشت شیشه سی جلال بیهوش رو نگاه میکنه میبینی بهرام یه عمر منم مامان هر کاری کردیم بابا برگرده و بهوش بیاد حالا که خواست خدا معجزه شده میگم باید بیهوش باشه یعنی چند سال منمان تظرم صداتو بشنم دری باز میشه و صبری و پروفیس رو بارد صبر صبر صبر درخشی نمیخواستیم آزامه خلوته شما بشیم یه مسئله پیش اومده همون جونخ باید در موردش به همون حرف بزنیم چیزی شده همون صبری اتفاقی واسه بابام ما افتاده پروفیس باز نکن دختاره مسئلهی نیست نه چیزی نیست باید مخواهیم با هم کنیم خب. من بینم بیرم, بیرم. باید آشتیم باید آشتیم ببین دوخنم وقتی سید به خوشمان برای باور بیشترش باید فکر از لزکانش رو این نکته مهمی برای باور سید به حساب میاد اگه نخواهیم متوجه گذاره زمان بشه تنها کسی که باید ببینه باور خانم مادر خود رو بیا مرسته نه بلا فاصله چجوری؟ اون هم مامانه بیس سال پیشم دقیقا نمیتونه من نمیتونم ها چطور میتونم برای بابام نقش مامانه بازی کنم؟ تو چجام نگاه کنه میفهم نت... باران به ناچار پذیرفته و پای میز گریم نشسته و کمی هم گریم شده بهرامم پیششه دوربین های مدار بسته اتاق استتار شده و از اتاقی از طریق مانیتورها، پروفسور و صبری در کنار شهرام شادی اوزارو تحت کنترل دارن شادی که از دوربین ها را انتخاب میکنه زوم میکنه روی صورت سه جلال تکون میخوره و چشم باز میکنه رفستون هیجان زده عینکش رو عوض میکنه باران و بهرام هم از طریق مانیتور دارن میبینن حالا باران کاملاً شبیه مادرش گیری شده. داره بهوش میاد. <متصفح> چشمای سه جلال کاملاً بازه. مثلا فقط جباد دوست بهرام هم اونجاست. سرپرست وارد اتاق میشه و با نیسان سیجانان سر میاد. سرمو چک میکنه و ماده ای در اون تزریق میکنه. سیجانان سر, سر میچرخونه و به پرستار نگاه میکنه. هم خیلی هیجان زده است. الهی شا که به هوش اومدی؟ اینجا کجاست؟ بیمارستان قائم تهران پر اصلا ناخداغا نگاهی به دوربی میکنه اما سه جلال متوجه نیست ما حرف زدن براش خیلی سخته بعد از 20 سال چند چند روز اینجا پراسار از طریق گوشی با کارگردان در ارتباطیم <تصفيق> تو با چند وقت تو که بوده بهش بگن از یک سه ماه از یک سه سما. ماه سه ماهه که مهمون مایین الهی شک که از کما در اومدی به قول خانومتون خدا شما رو دوباره متولد کرده خانومتون بهار خانوم با شنیدن نام بهار، پروفسور شوکه لازم رو به سید جلال وارد کرده و از پرستار میخوان که خارج بشه پرستار میره و سید جلال رو فکره جلال به نقطه خیره شده همه پشت مانیتورها به حرکات سی جلال در شدارم الان دقیق نمیشه چیزی کن ظاهرن سطح خوشواریش کامل کامه نیست یعنی من میتونم نقش بازی کنم پروفسور روزنامی قدیمی در دست وارد اتاقا جلال میشه سرش میره و روزنامی روی میز مزه میز سلام سه جلال کنجگاه به پروفسور نگاه می خوشبختانه بیوشی و کمای شما بیشتر از سمات رو نکشید پس، جلال دستشو که کمی چروکیده شده بالا میاره چرا اینقدر زرف دارم اکتر. کاملا طبیعیه از در نگران نباشید قول میدم تو چند روز آینده کاملا بهبود پیدا کنی از پروفسور دست جلالو میگیرم چه حراجی فعلا به خودتون فشار نیارین به چیزی هم فکر نکنین چند وقتی رو تا بهبودی کامل مهمون ما هستیم. بهرام پیش باران که نمیگرونه شه باران صوت چادر مادرش رو لحظه ای رسیده که باران باید نقش مادرش رو بازی کنه در راه رو راه میره و ذکر علی در اتاقو باز میکنه. آرام آرام بالای سر یه جنون پوشه رو که دستش روی میز گذاشته جنون کاملا هوشیار نیست باران نزدیک جلال شده و کمی خم میشه و با صحبت <تصفيق> جلال. جلال جلال سر میگردونه و به باران نگاه میکنه باران دستش رو در کاسه آبی که کنار تسبیح و مهر قرار داره خیس میکنه به صورت پدرش میکشه و کنارش میشینه. اون حالا ووزو گرفته و نماز می آها. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم جلال نگاهی به اون بکنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بل عالمين الله الحمد لله ها الله الله الرحمن الرحيم عشق از چشمان جنون جاری بهرام از پشت شیشه مزاری گریم به حضرت آه. مهد رو بر پیشونه پدرش مزد شکرم مدتی گذشتی دکتر از طریق گوشی توضیحاتی رو به باران میده خوبی جلال تو تمام این سالها هر وقت یه یادگار نقافل میمونده از جن این این بار نه باران جان بگو همه این برای بیهوش سماه اتفاق میفته طبیعی من با دکتر صحبت کردم گفت خیلی طبیعیه خب سما تو کماه بودی آقا جلال خوب میشی با امیدو خدا جان بهار خانمی خوبی؟ باران با سر تحیید میکنیم باران جان حالا وقتشه که اون مسئله رو به سگل تکیم راستشه راستشه راستش آقا جلل من تو من تو تا چند وقت دیگه تنها نیستیم عیبی به این خوبی رو تختمیدی که بابایی رو تخته او خودشو این بچه شش ما خوشگیش رو پروفسور داره همه چیز رو خوب کنترل میکنه. هنوز چیزی نشده. با به بچه های باوی. باران خیلی خودش رو کنترول چقدر بیرست با بوده با سبری صحبت میکنه صبری اکسی از جبهر رو به شهرام شادی نشون میده ترایی سحنا و گیریم و دکتر هم به نوبت اونو میبینه و شادی که به پدرش کمک میکنه تا بتونه یواش یواش با کمک دو اصال را اگه که بخوام به زبون ساده بگم تا الان خود بختانه روند به خوبی نسبتاً خوب بوده. بسیار شکر. از این به بعد وارد فاز دوم درخواهم بشید. و تا اونجایی که ممکنه باید افراد مختلفی رو غیر از فامیل ببینید و باور کنه. خصوصاً بنده تاکید دارم روی دوستان و هم‌رزم‌های جنگ. بعدم هم وارد فاز سوم میشیم. و سید جلال و متوجه تخییرات کلام میکنیم درسخونم اون احمد بود الان بنده به خاطر هواش میگن مریضه یه مریضیه واگیردار میگن که اون وسط قط بلنده از بچه هی اسفهانه صادق صفایی بند خدا فاف شهید شد راملیش یادم نمیاد بهش میگفتم محسن تخریب تو کانال غیر آب شده یه یا ها بله بون بزرگ همه بود سید به شکریبش میگوه مستنازاد هنوزم همون جوریه آوانستیان هم بچه های عرامنه بعد جنگ تو تفاوز فقط چند تا دونه از استخونهاشو پیدا کردن با حساب آوان سبریفتون چند نخوادشون قطعون بشن دوسته تاشون بایگه رو بهت پیگیر امیر پسر کارخونه بود. سلام کردام حاجا با صبری. بله بله امیرم. خدا خیرتون بده. حاجا نگاهی در... به پدرش که پشت میز نشسته متاسفانه برای شرکت توی مناقصه رفتن خارج از کشور. صبری به شکل جوونیاش گیریم شده و در کنار جلال باهاش حرف میزنه و جلال نگاهش میكنه. صادق صفایی محسن تخریبچی صبحانی دروس بهانی پول آجر و آجرپور آوانسیان همشون ها ماشالله با دست خالی بایستدن جلاشون و فرستادنشون همون جایی که ازش اومده بودن جلال دست صبری شونی و سبری دستشون من منم باید ترکش تو زانوی راستم یه چند روزی دست بست و دقوم آوردم ولی دلم پیش شما بود حقیقتش یه ترکش به کاسه زنه که قابلی همه دل نازگ شدی آخ صابت جفر جمالی خاموشش کن بیمارست خاموش کن محمد بنایی لطفاً چراغ آقا روشن کنین؟ محمد بنایی موتاد شده و جفر جمالی بیم. من فقط صورت این آقا رو میتونم یه قولایی بدم شرامتون چون این دوستمون تغییراتش نسبت به قبل اون چیزی که ما دیدیم خیلی مشروطه یعنی یه جورایی زیادی عوض شده همه یه جورای زیادی عوض شدن رفیق اون تا مالو بعضی محلوم نمی کنه. چون اینجاشون عوض کردن تفکر و مغزشون شما یه بنایی سبری رو صدا میکنه سبری بلند میشه و به بنده نزدیک باشه بنایی سیگار به کبریت میزنه سبری صبری رو فکر میکنه خاجی جان راستیتش اصلا خودم دوست ندارم آسیت جلال با این ریخت و قیافه چش و چشم اندازیم درقه آیه های قرآن شما راضیم نه شما این ریختی او درم موکره مو درم میخوای یکم استراحت کنیم بهرام ایستاده و شاهد تلاش باران برای بهبود پدرشه سه جلال به سختی و حالا با یک ازا راه م اما تعادل کامل نداره لحظی تعادلشو از دست میده باران و بهرام به کمکش سه جلال نگاهی به بهرام سه جلال و باران از طریق تلویزیون قدیمی فیلم رشادت ها رو در منطقه نگاه میکنن باران ملافه روی پدر رو مرتب میکنه لباسشم مرتب میکنه جلال دستی به صورتش میزنه انگار متوجه چیزی شده برخلاف اون موقع حالا ریش نداره اشکاشو پاک میکنه بخوام با دکتر کن ببینی؟ نه؟ خیلی بهتره، یک کاری کنم فردا کنم جام سرد آقای شادی که حرفاشون رو شنیده به صبری میگه کلا دلم واسه همه چیز تری شد میگه میخوام برم خونه چواه کنه برحال پیگیری ضرری نداره شاید اگر پروفسور سرال سیدو برای برگشتن به خونه ببینه با مرخص شدن زودتر موافقت کنه. فقط میمونه پیگیری خونه قدیمی سید خب میخوایی من برم دومتش ما بریم دومتش ماشینم هست جفر جمالی با گیریم بالا سر جلاله خب چه خبر؟ اموزم اجا مرخصی میان انجا باید داره؟ نگاه نگاه چی شده؟ مادر بگیرید محمد بنایی سیگار به دست از پشت شیشه اونها رو نگاه میکنه بهرام هم پیششه این اسد جلال دیگه مرد تو دور دار زمانه نمیبینی ها نمیبینی بعد از چند بار کبرید روشن میشه سیگارش روشن میکنه این ها سیدو اینجوری نبینی یه فرماننده بود نگو وقت از اون فرماننده بیسی می که نبود یه از چند کیلومتر عقب تا اسم رمز به خون کوین ها او هم برقب چش دارمش جان ملاق باشه تا توش چیکار سرمون تو خفتم اونقدر نیوادی سی داره همه, همه جلال با اساس سعی راه باران هم کنارش سید میسته تا کمی نفس تازه خیره به باران نگاه میکنه باران خودشو جمع جمع میکنه نگرانی که نکنه پدرش بفهمه که اون بهار خانم همسرش نیست حلقه عروسی دستش دستشه جلال نگاهش نگاهشو از باران میگیره و سعی میکنه خودش با کمک یک میله طولی و عصا راه بره توی اتاق باران میخواد سوب به دهن پدر بذاره سیه جلال سرشو بر و نمیخوره باران کاسه سوپ روی میز میذاره و از روی سندلی بلند میشه و میره جلال نگاهی به دور رو بر قاشق سوپو رو بر می با دستمالی اونو پاک میکنه و در سطح برراغ پشت قاشق نگاهی به خودش میندازه اتفاقی پی نباید میافتاد افتاد جلال خودشو دیده پیر و شکسته و متوجه گذاشته زمان هم شده نگاهی به اطراف میکنه و دست بر سرد اون خیلی ناراحت بود باران که روی صندلی کنار تخت نشسته بوده از خستگی سر بر تخت گذاشته و خوابیده سه جلال برای سرش میاد اطور رو درکو مدیلو بازی میکنه پوتیناشون برمیده حالا سید جلال پوتین و لباس پوشیده اصازنان قدم در خیابون گذاشته برج میلاد پشت سر سید خود نمایی میکنه اون کمی نامتعادل قدم برمیده باران چشم باز میکنه نگاهی میکنه پدرش نیست از جا بلند میشه از اتاق بیرون میاد نگرانه توی راه بیمارستان این وران ورمید آقا جلال جلال بابا بابایی نیست. هیچ کس نیست. وارد اتاق کنترل میشه. اوکی. پای مانیتورها خوابش برده. بذار ببینم چه جوری می‌خواد دوشک. ساق پا ساق پا باران گریه کنان میره و بهرام سر کامپیوتر. باران از پلای بیمارستان پایین میاد و نگران خارج میشه. بهرام هم سرگردون به دنبال سید جمال. به همه جا نگاه میکنه این طرف اون طرف و بالاخره از در خارج میشه. یه جلال مطات تو خیابان به ساز را حرکت میکن نفسش بر اما میره حالا دیگه کاملا متوجه تغییرات شده در کلهای بربر فشار خاب سببی با سرپرس مشاجره میکنه واقعا چه اتفاقی میفته که یه بیمار با شرایط ویژه و اورژانسی همینجوری میتونه سرش بندازه پایین بره بیرون بیخیال متوجه نشه محترق. شما اجازه بدین لطفاً آقای محترم اینجا بیمارستانه جواب منو بدین لطفاً ایشا پرستار کشیک بنده نبودن اونیم که بوده هیچ گزارشی نکرده در زم. ما مسئولیت این بخش رو به عهده داریم نه اون بخشی که شما بازسازی کردین و کار می‌کنین مسئولیت این جور امور به عهده ریاست بیمارستانه. اونوا پاسخگو شما هستن. چه پاسخی؟ چه مسئولیتی خانم محترم؟ یه بیماری که تازه از کما در اومده جلو چه دکتر و پرستار و نظافتچی و نگهبانو این هم آدم از بیمارستان میره بیرون، هیچ نمی نمیبینتش. و وقت شما که از رئیس بیمارستان بپرسم؟ پروفسور. سلام. سلام. سلام چی؟ چه خبر شد؟ سجا رو رفته. رفته. کجا رفته؟ از ما کجا پیداش کنم؟ به خاطر همین خطرات و این اتفاقا بود که ارز کردم خدمت تو نجیزه بدید هفته اول و رفیقاش ازش نگهتری کنن دکتر صبری عصبی میره پروفسور هم جلال توی پیاد رو لا لای جمعیت قدم برمیداره و به همه طرف نگاه میکنه اما توی خودشه تبلیغات بزرگ خیابونی رو نمیده حالا وسط اوتوبان استادی رفت و آمد سری ماشینها، ها لنگان لنگان و با عصا به سختی از عرض اتوبان رد میشه حالا در یک اتوبان دیگه است زی جلال توی یه تاکسی نشسته و به رادیو گوش میده خانمی بقید دستشه هم اون هم راننده قریبان سلام بر دفاع سلام بر حماسه، هماسه ای که در آخرینشش خیلی ها نقش داشتن از مادران همسران و خواهران صبور و پرستار از خرمشهر شهر و حلبچه تا تهران و اسحان از سرهنگ و سردار تا سربار و استوار می خواهم از مادرها آن سبوری ها حرفی ببینم افسوس بر پلاک بینشان. خلاسه جلال توی خیابونی که برگای پاییزی روی زمینش دیده میشه به کوچه میرسه کوچه شهی قوانسی هم همراهش طاقت نمیاره و میفته جفر جمالی سینه چای به دست در ای راه دوتا چادر هم اونجا دیده میشه سیه جلال روی تختی اونجا نشسته و جفت پیشش میاد و روی تخت میشه خیلی گذاشته سیه کم بیست و چند سال تهرون بزرگ شده و شلوغ حالا آره دیگه از ما بهترانم نمیدونن چجوری از شمرون تا تو ته خونه رو بدون یه بیلیت دیویستومنه یه مترو میشه رفت و برگشت از خودت بگو از وقتی برگشتی دلم میگیره وقتی یه آدم یا زخ خورده برگردی و ببینی دختر رو که نشون کرده ات بوده حالا واسه این که تیر و ترکش تو تنتو و بعد جایی زخ خورده یه گوش افتادی و دکتر متخصصت میگه شاید در آینده سید رو شاید و آیندهش وایستو فکر کن آره؟ شاید در آینده تو روابط زناشویی کم بیاری ولد میکنم میشه عروس پسر همسایه امری که قیافه سر تا پا مالیده است آخر هنرشون دو بازی و پیچوندن و کلا گذاشتن سر استخفره سر خود خداست اون وقت تو نباید چیزی بگی جفر عشقاشو پاک میکنه اون تصویه صفیدن دستش جلال ناباورانه فقط نگاه میکنی صورتت با سیلی صحب نگه داری و باقص کنی از اشک جمع شده یه گوشه چشم ننسید وقت دلت میگیر و تای میشه واسه روزایی با شما بودن. شی نسبت کردن جلوی اون کسی که حداقل می دونستیم اسم و رسمش کیه؟ از نبی و دوستیم هم سعد جلال. و باز عشق شکوه. محمد کجاست؟ میخوای ببینی؟ جعفر نگاهی به جایی میکنه و جلال میفهمه که محمد بنایی اونجاست. از روی بودنش. خودشو به همون مهر رسوند. بر دیوار اونجا عکسهایی از پهلوانان قدیمی دیده میشه هم هست که در نیم تاریکی اتاق بخاری از اونجا بلند شده سید جلال وارد اتاق میشه نگاهش به بسات محمده محمد که در حال تذریقه تا چشمش به سید مییفته سرنگو میندازه سید جلال نگاهی به وضعیت اونجا میکنه متاثر میشه و نزدیک محمد میشه من مار. جلال سر به زیر میدازه چه کردی با خودت؟ دستان داره آسایه میشه نداره؟ بعد این همثال و با این وضعیت دیگه شنفتنش چه لطفی داره؟ شنیدنش برام لطفی نداره آفران نمیشه آسانیه میبینی بعدش هم قصدش درازه حقایت رفیق بد و روحال خوب هم نیه میبینی از سر نمیدونم وا وزنونی ام نبونه که اینم بود انقدر دلمون نمیشه به مولا ا کون داد خیلی دادر اینو دیدیاما ا کون یات جومبوس شدنو ساوی نموف نیست چنگرمش از موت اونم در شدن مورفین بیمارستان درست وقتی که زمین و زمین لام از یادش میره که تو اصلا کی بودی؟ چی بودی؟ چی تو ها گردی؟ بعد ده ده شیرات مونده تو این شهر درنده اشت بمیسا بیا نگاه نگاه پنج زارت پوکه پوکه مورفین چیزی پوکه های مورفین خالی میده که ساز کنی تو کنی که همه کنه چه بر از چشمانه جلال جاری بشه همه اینا که گفتی؟ چشمای محمدم خیزه خیزه باست دیده بانه گردان تبیدی ها که دلش به چشمای بابا بودی و که تا استکانش خوش و هست هست چه هم درست آزم غلطه اینکه نتونی سرت بالا بگیری و راجبش حرف بزنی درستش نمی این خودتی خودتی که درستش رو کنی عمل خدا بعد هممت و غیرت خودت که باش همه چی درست شدنی برای همینم همین همین همین هلان دستت میگیری به کنده زانون تو میگی جلال خودش به سختی بلند میشه یا علی دست دراز میکنه به طرف محمد محمدم دست در دست سی میزنه. یا علی یا علی صبری پروفسور و شهرام شادی به همراهی ماشین نیروی انتظامی و آمبولانس و دو ماشین دیگه به محل جفر جمالی میرسن محمد بنایم در کنارشه خیلی مشکل هست. همه از ماشین پیاده میشن. عشان. سلام علیکم. سلام درشتو. سلام. ساجانو پیش شما بود. الان کجا سال بوده؟ الان پیش ما بود. تو قهوه خونه. بعد گذشته این همه سال و با این همه راه و خیابون و فوتوبان جدید هنوز هم میدونست قهوه خونه کجا سراش کرده. علالم بالاست سید جلال لبه پرتباهی ایستاده و از بلندی به تهران و ساختموناش نگاه میکنه همگی به نزدیکی سید جلال میان اما جرأت نمی جلو برن صبری و دیگران از دورتر با اون صحبت آه سید جواب منو نمی دی؟ منم سابر سابر با شنیدن اسم سابر پای سید می لغزه اما خودشو کنترل می بره. باشه باشه پس فقط حرفامو گوش کن به خدا ما نخواستیم به دروغ بگیم فقط حرف دکتره گوش کردیم میدونم محمد و جعفر دیدی خیلی دیگه هم هستن دیدوان لشکر 21 که حمزه داره با یه پنجاه و هفت پیزوری برای خرج دانشگاه وچهش مسافه کسی میکنه بیسیمچی لشگر هفت داده هفت از سال اسم لشکرش رو پشت ما داره دیش ماهواره تنظیم میکنه برای یه لغم نون سید متحصره و محمد بنای نای ایست دهنه. از جنگ فقط یه سال روزش مونده با یه رژه تو میدونه آزادی با شو تلویزیونی میدونی چرا؟ قصهش تلخه قصه یه که حتی جارتو بفتنشو با خودمونم نداریم ولی به خدای احد و واحد ته دل تک تکمون دلتنگ شما اون روزایی که سر یه می میشستیم و کسی هم خبری سوال نمی کرد سبری نگران سکوت سید شده پروفسور بهش نزدیک میشه و آقای شادی فیلم برداری میکنه چی چینیی که سید اینجا با این وضعیت دیگه نه من نه هیچ کس دیگه نمیدونه تو مغزش چی می‌گذره متین حالش بهمن به گوشم کوسشکا نزدیک خالش گوشی توشی هیچ نیست بیاد منطقه 09 رسایی انجام میشه الو با سلام حملات صبح سفر خوش گذشت بابا او چطور بود خدا رو شوش خداون توفیقی خدمت رو باید جوری نصیبتون کرده جانم ایچی ما هم اینجا زیافت داریم همه هم مهمون سه جلالیم به کی زنده بود گفتیم بیاد تپه بالای غرب خونه جعفر با قدیمی یادت میاد آن؟ اشکال نداره این روزا فراموشی نانفرنازا با شده شد جعفر بازرده میخوایم هستش تولد بگیریم بیدادیه با دوم بگیشم شما دوست داشتید تشریف پیار <متصفيق> <متصفيق> بهرام و باران سوار بر وانت جواد هستند. خود جواد عقب وانت روی وسای میشه هستن حاجی متقی و پسرش با اتومبیل مدل بالاش به همون محل میاد هم. از ماشین پیاده میشن و خودشون رو سریع به بقیه می رسونن. محمد بنایی روی زمین نشسته و بقیه ایستادن و به سید که به اونها پشت کرده نگاه میکنن متقی و پسرش باید سلام جلال متقیه تقیه متقی جلال یادم میاد. سر میز میمازه. آمبولانس از راه میرسه. همون رزمنده محسنی که در جنگ دیدیم حالا کاملا پیر شده. جبهه چوبی از پشت آمبولانس برمی داره. گردن طبی تبیان بسته. صبری پیش اون میاد. مرد مسن پیشونی سابر رو میبوسه. جلال هنوز پشت به دیگران است. جلال دو که برگرده یا نه اما برنامه می سلام فلو خوش اومدی منم صبر، صبر، صبری سلام واسه جلال منم فلو واسه ما هیچ چی आवाज نشده مرد به مردون گیت قسم اون اون اون اونایی قبلا با هم خوردیم راستا بتمیدم برگرد ما رو نگاه کن تو رو به جدت برگرد ما رو نگاه کن اصازاله انو زماست گذشته هممون تک به تک تو رکابت جعفر اینو میگه و پیش محمد بنایی میره و اونو از چرت در میاره و بلندش میکنه بر چشمان پروفسور همیشه است. سید هنوز چشم به شهر و خونه هاش داره و بر نمیگرد آه سید نمو سید بابا خیلی نگذشته. ولی به خاطر قولی که داریم اصلا نشجا نزدیم به بدن داریم از توی یخ میزنیم آه سید. وادت کوفنی برات دیلوان کو جان با اون چای بابا مرچ همون گفتی چای دیگه روچی هر جا نگاه کو نیو نیو واسه ی همو هم اینجاست. رفیق همون مار زمان جنگ و تو همه جنگجا. این سالا یه دونه همراه و همدم من بوده. مثل توپانی همیشه ساکر. کلی با هم پراز و فرود داشتیم تا رسیدیم اینجا. ولی هنوزم هم پای کاره با شاختاش خوب کار میکنه. مثل همون مقاها. میبینی آقا سید؟ و سید که بر نمیگر. بانت هم میرسه به همان محل بهرام جواد و باران به جمع اضافه میشن باران از همه نگران تر. دوان دوان جلو میاد پهلوون جعبه چوبی ما رو روی زمین میزند. باران آروم آروم جلو میاد و با پدرش صحبت میکنه جلال سر بلند میکنه آقا جلال ازم خواستم واسه خوب شدنت نقش بهارتو بازی کنم بهاری که بیس سال چشم انتظارت بود و نذاشت دستگاه رو ازت جدا کنم حالا که برگشتی اون دیگه نیست میخوام سرامو بذارم رو شده از سالهایی واسه بگم که نبودی از پرستاری مامان از تنهای های یه حرفا و درد و دلائی دارم که فقط تو بگم بابا بابای منم باران میدونی چند سال صبر کردم تا سگوتت بشکن و صداتو بشتم چشمای جلال خیزه بشکن بابا تو رو خدا برگرد کرد بر کرد و باران تو ببینیم باران عشر از چشمان جلال باریدن میگیره باران کمی افم میره. جفر عشر میرزه بهرام مغمومه و بقیه نگران منتظر اکس عملسی سی جلاله پاهای جلال لب پرتگاه تکونی میخوره و به کمک عصا به طرف جم میچرخه و به دخترش که مثل باران بهار عشق میریزه نگاه میکنه صبریم هم گلیه میکنه جلال روبه روی باران میاد که هنوز چادر سنشه سه جلال گوشه چادر باران رو میگیره و به کمک اون حرکت میکنه باران به جمع پیوده سه جلال به طرف اون رز همه ردیف ایست صبری به احترام فرمانده سلام نظامی میده بقیه هم تبعیت میکنن. جلال لنگان لنگان به اونا رسیده و به نوعی سان میبینه محمد بنایی با حال خرابش جعفر جمالی که خیلی شکسته شده صابر صبری یار قار و همدمش پهلوان که پیر شده و مارش آقا فراز متقی کارخانه داره. من از من دیگه. جلال حرفی نمیزنه. از جلوی جواد، آقای شادی و امیر پسر متقی میگذره به پروفسور میرسه. انگار میخواد تشکر کنه. پروفسور پیشونیشو میبوسه و سرشو در آغوش میگیره. سید جلال به طرف باران و بهران میره که حالا در کنار هم میستدن نگاهی به اونها میکنه امیر متقی دیگه حساب دستشونه دی. و جلال کلامی نمیگه گوی سکوت علامت رضاست. کمی از جمع فاصله میگیره و باز نگاه به شهر درندشت تهران و ساخته اون رو مندغان عزیز و ارجمند ما هم به نوبه خودمون این فیلمو تقدیم میکنیم به همه‌ی اونهایی که برای دفاع از ایران مردان جنگیدند و همواره فکرشون آزادی و سربلندی ایران بوده و هست. فیلم 1359 که چند ماه پیش در سینماها اکران شد، اولین ساخته‌ی بلند کارگردان جوان و خوشفکر کشورمون سامان سالور بود که امیدوارم مورد پسند شما واقع شده باشه. شون در فرش فجر امسال هم با فیلم سینمایی امین خواهیم گفت حضور داشت. با آرزوی موفقیت برای این کارگردان خوش‌ذوق، عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده و سردبیر فرشاد آذرنیا و بنده که نویسنده و گوینده برنامه بودم، بهرام سرداری هستم. روزگار بر شما خوش تا رادیو فیلمی دیگر خدانگهدار. که بیان soti